تمام شد کتاب گلستان و لاحل مستقان به توفیق باری از اسمهون. در این جمله چنان که رسم معلفان است از شعر متقدمان به طریق استعارت تلفیقی نرفت. کوهن خرقه خیش پیراستن به از جامعه آریت خواستن. قالب گفتار سعدی ترابنگیز است و تیبتا میز و کوتح نظران را بدین علت زبان طعن دراز گردد که مغز دماغ ما بردن و دود چراغ بی فاید خوردن کار فطرتمندان نیست ولیکن بر رای روشن صاحب دلان که روگ سخن دریشان است، پوشیده نماند که در های شافی را در سلک عبارت کشیده است و داروی تلخ نصیحت به شهد زرافت برامیخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند. الحمدور الله رب العالمین، ما نصیحت به جای خود کردیم، روزگاری در این به سر بردیم، گر نیاید به گوش رقبت کس و رسولان پیام باشد و بس، یا ناظرن فیه سلب الله مرحمتن، صنفه و تفل لصوه بهی وطلو لنفس که من خیرن توری بها من بعد ظال که قفراننا